بسم الله الرحمن الرحيم و هذا حقا منقبتنا بالله الذي ينعظم وصلى الله على سيدنا محمد الله و هذا احد بيته الطيب الطاهرين له ذات المهديين المنتجبين صدق ما بقیه الله ف من بالارزید عوض بالله من الشیطان الرجیم و بو كل عمر كسر ف قرطهم و من تزاغن الغلوبِ بتشاهن الصدور و النفوس وتخاذل بتخاذل الأيدي توفيق و زور الله خدمت عزیزان برادران و بخاران بزرگوار در گلستان بیزوال سخنان امیر المؤمنین به گلگشت مشغولیم و استفاده ها و بهره ها میبریم از شرح و بیان خطبه 192 نحج البلاقی امام سخن به رسید که امیر المؤمنین پرده هایی رو به کنار می زند و گوشه از اعتبار را برای مخاطبان خیش در این قسمت خطبه مطرح می فرماید. تیم خدمت دوستان عزیز که فرمود اگر میخواهید تعصب کنید باید بدین امور دهگانه که یک به یک گفته شد نسبت به این مسائل جدی باشید پافشاری کنید و حتی فخر کنید. که یک به خواندیم و تکرار نمی کنم. در کنار که اصرار به این امور رحمی رو مطرح می کند چهار نکته به بیانی سه چهار نکته را مطرح می فرماید که در قبال اون به شدت باید از این امور اجتناب کرد که بعد نتیجه اون رو در قسمت بعدی که الان امروز میخوانیم امام تصویرگری می کند و آشکار می وجتنه بو بود توضیح دادیم دیروز خدمت دوستان به بحانی منل اجتناب و کلمه اجتناب که قبلا دیدیم گفتیم اجتناب ترک کردن نیست اشتناب به معنای ترکیز که همراه با اراده، تصمیم و تغییر مسیر باشد. انسان جوری زندگی می‌کند که در مسیر امری قرار نگیرد، جوری برنامه‌ریزی در زندگی دارد که مواجه با چنین مسائلی نشود. نام این اشتناب است. فرمود وشتن بو کل امرن اشتناب کنید از هر امری که کسره فقرت هم که پشت این جماعاتی که من برای شما مثال میزنم من علی شکست شما اجتناب کنید از امور کمر شکن از اموری که به زیر میکشد انسانها رو خورد میکند آدمیان رو و آوهن منتهم آوهن از ماده وحن سستی زعف منه به معنای قدرت قوه و اشتناب کنید از اموری که قوت انسانهای گذشته ای که برای شما مثال زدم قوت اینها رو تبدیل به ضعف کرد حالا آره اون چند نکتهی که امام به عنوان نمونه مطرح می کند یک منت هزاغن القلوب از زقنهای دسویه در دلها خیلی نکته عجیبیست زقن به معنای حقده چینه نفرت باب تفاعل کار دستویه رو میرساند اجتناب کنید از امور کمر شکنی که اموری که کمر فرد و اجتماع رو میشکند و اینها رو زمین گیر می کند نکته ای که ما مطرح می فرمایند چین ورزی نسبت به یکدیگر. دیگر حقد و چینه در دل نسبت بندگان خدا داشتن و تقابلن. خوب. خداوند صبحان نمی پسندد عزیزان که نسبت بندگانش هایسته او هرقد و کینه در دل انسان ها باشد. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو. خدا یا نکند قل و کینهی در دلهای ما نسبت به اهل ایمان باشد اگر واقعا نسبت مؤمن این باشه این جملهی که الان دارم نخوام بگم خدمت دوستان احساس خطر میکنم از گفتن این جمله اگر حقد و کینه یک مؤمن در دل انسان باشد این دلیل عدم ایمان خود انسان است دلیل آن است که در این سینه ایمان جا نشده است. که بجای آن اون و کینه مؤمنین در دل آمده است. این ویرانگری، کفر درونی و ظلمت درونی رو میرساند متاسفانه. هنگامی که تزاغن شد، ترفینی شد و خسران. ایمان فرمود اموری که چنین ویرانگری دارد و باید از آن اجتناب کرد اینی که مباد مراقب باشید نگذارید اگر دیدید داره میاد یه حقدی یه کینه در های شما یه بغضی اسبت به ایمان سریعا به خداوند ملتجی باشید مقدمات این کار رو پیش بینی کنید شاید نوع این مسائل عزیزان به تعبیر عربها انقداهی باشه یعنی یه مرتب یا تو دل انسان اما مقدماتش خیر مقدمات اون دست خود انسان است یعنی در سیاستگزاری ما با دیگران و رفتار ما با دیگران بوده است که این کینه این به در دل ما آمده است و ما رخصت این کار رو دادیم وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن انسان مؤمن نمی تواند سینه خود را که مطلع انوار الهی است و محل اشراقات خداوندی به کینه های تیر و تار و باغوزه های این نفرت انگیز مملوف کند پس یک اولین امری که امام فرمود به شدت اجتناب کنید که شکست پشت دیگران و پشت شما را هم می شکنند. کینه های متقابل دوم و تشنه صدور تشنه از ماده شحنا میآید شحنا ایل العداوة یعنی دشمنی هنگامی که اون بغزها و کینه ها برون میآید تبدیل به شحنا میشه یعنی اون بغض پنهان آشکار که شد میشه شاهنا میشه تشنه و بپرهیزید از اینکه به تشاهن دو سوی کار شما بکشد یعنی اداوت ورزیه متقابل به یکدیگر اون کینه ها بالاخر که ریش درون عاقبت سر کنند کار دستتون می بالاخره اون بهغوزه های نهفته یک روزی آشکار می و ویرانتون تون می کند کمر میشه کند سس می کند بنیان فرد و اجتماع را و تدابور نفوس سوم اجتناب کنید سومین امری ویران ویرانگر و فچن برای گذشتگان بود و برای شما هم خواهد بود تدابر نفوس تدابر از ماده دبر میاد پشت تدابر تفاول باز دو سویه است وقتی این روحا برگشت پشت به هم شد میشه تدابر بپریزید از اینکه دلهاتون به هم پشت کنند، به جاییون که چهره به چهره هم باشید به جاییون اون که قمخار هم باشید یار هم باشید دوستدار هم باشید گریزانه از یک دیگر. فراری از یک دیگر. پشت کرده به یک دیگر نامه هربان بدون تعلق بدون التفات به هم بیتفاوتی یه من خاصر گرفتن و تدابر نفوس در همون نامه 47 که دیروز عرض می خدمت دوستان که امام الله الله ها رو میفرماید فرماید و وسیعت وجود و حضرت اونجا هم فرمود ایا کن از این که نسبت به هم تدابر داشته باشید نکند که پشت به هم کنید خلاصه آمیانه ارز کنم نکند که روی دیدن هم رو نداشته باشید ویرانتون می کند زمینتون می زند و تدابر نفوز چهارم و تخاظل عیدی خزلان به معنای واگزاری است اسباب جور می شود برای کسی کاری را انجام میدهد نام این توفین است. اینگامی که اسباب فراهم نمیشه راهان میشه میشه خزلان پس تخازل باز طرفینیه یعنی یک را رها کردن و گذاشتن و تخازل لعیدی نکنه دستتون را از یاری هم به کناری بکشی ببینید داره یه مؤمنی فریاد میزند ببینید یه مؤمنی داره زیر بار فشارها چگونه تحمل میکند و فریاد میزند اما شما یه مرون علیه ها از کنار اون رد بشید بیتفاوت براتون اهمیتی نداشته باشه دست یاری به سوی یک دیگر دراز نکنید و دست هم رو نگیرید تخازل رها کردن یک دیگر همونی که همتون بلدید من سمع رجلا ینادی یال المسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم اگر شنیدی که یه مسلمان داره میگه های مسلمان بدادم برس کمکم کن گفتی به من که نبوده به دیگری بوده ما تنها که پیغمبر نیستیم غمامت بخوریم مسلمان نیستی مسلمان نیستی فلیس بمسلم امیر المؤمنین فرمود این چهار نکته رو اجتناب کنید که کمر دیگران رو شکست کمر شما را هم میشکنند. یک فرمود از آقون القلوب چینورزی متقابل باید شست این سینه ها رو. تعطیر کرد به آب رحمت خداوندی و مهربانی از باری تعالی و تشاام صدور و هایی که آتش رو در سینه ها شغلور و تظاهر می کند و تدا بر پوشش پشت کردن دلها از هم و فاصله گرفتن از یکدیگر و تخاض ایدی که نتیجه این ستای قبلی میشه این آخری دیگه که دست از یاری هم شستن و یکدیگر را رو رها کردن و انسان ها در اجتماع اما در قربت و تنهایی اون جمله این که دیروز عرض می کردم واقعا دامنه داره بلاخره یه کارگردان یه بازیگر های از بازیگرهای تنز اون سوی دنیا یه وقتی همسرش فوت کرده بود بعد این یه متنی رو نوشته بود خیلی این متن سنگین بود خیلی متن سنگینی بود در حال هوای اجتماع بشری که قسمش این بود که چطور انسان ها در عین اینکه انسان احساس میکند این شهرهای شلوغ رو حالا اون به زبان خودش به همدلله به برکت تعالیم نورانی اسلام ما این گونه نیستیم اما ما نشانه های اون رو در میان خودمون میبینیم این شهرهای شلوغ رو نگاه میکنی اما وقتی نگاه میکنی میبینی اکثر این مردم تنهان در این شلوغی برای این که این انبوه جمعیت رو میبینی اما وقتی به تک تک اینها نگاه میکنی تک هم تنها کسی ندارن هیچ نیست دستشون بگیرد یارشون باشد غمخارشون باشد خیلی نکات عجیبی رو می نویسد امام فرمودن اینهاست که کمر رو می و تخواه زلل عیدی بسیار خوب و رو. و احوال الماضین من المؤمنین قبلكم من قبل از این این ادامه این بحث رو بگم از زیباترین نکات جامع جامع اشناس ها نگه کل نهتر بلاقی امیر المؤمنین همین قسمت هاست که میخوام امروز خدمت دوستان بگم یه مدلی رو امیر المؤمنین میده که ها بار و هزاران بار این نوسان در تاریخ دیده شده در جوامع بشری حالا ببینید غزت چه می و تدبر و احوال الماضین من المؤمنین قبلكم تدبر کنید کاملا بنگرید. بارها اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز تدبر از ماده دبر به معنای سوی چیزی را دیدن که شما نگاه میکنید یه چیزی رو ظاهرش رو اما گاه ذکاوت میکنید برمیگردانید این سو اون سو همه یعب آدان رو می نگرید نامین تدبر است. افلا یا تدبرون القرآن اما علاق قلوب نخفالها آیا شعن شما نیست که مسلمانان تدبر در قرآن کنید یا اینکه بر جانهاتون قفل خورده است که نمیرید سراغ تدبر در قرآن فرمود و تدبر و احوال مازین؟ برید تدبر کنید احوال گذشتگان از مؤمنین را پیش از خودتون برید به هماغ تاریخ برید دو هزار سال قبل برید سه هزار سال قبل برید چهار هزار سال قبل بیا جلو. کیف کانون ببینید مؤمنین کیف کانون فی حاد و البلا گاه در برهای از تاریخ و زمان چگونه مؤمنان در حال تمحیص و بلا بودند. کلمه تمحیص از ماده محس و محس و تمحیص به معنای زوب کردن و سوزاندن ابتدائن، اونگاه سوزاندنی که به دنبال اون ناخالصی ها گرفته می شود در دعا داریم اللهم محص عنا ذنوبنا خدایا گناهان ما را تمهیز کن در دعا داریم یعنی گناه های ما را خدایا اینها را آب کن زب کن از وجود ما ببر اون ایار گیری که وقتی خدمت دوستان گفتیم همون کاری که با طلا میشه میره تو کوره حرارت میاد بالا زب میشه گرم میشه داغ میشه ناخالصی ها گرفته میشه ذر ناب از بوته زرگر بیرون میاد ایار میشه ایار هیچ دو بیست و بیست و دو و بیست و چهار این میشه تمحیز اونها چند در آیات شد خدا تمحیز می کند مؤمنین را یعنی همان که حصد الناس ان یترکو ان یقولو آمن و هم لا یفتنو آیا مردم گمان میکنن به صرف ادعای ایمان کار تمام است نه لازمه به فتنه لازمه به تمحیص افتتان است باد عیارگیری بشه وجودشون در فراز و نشیب ها افت ها تا اون حقیقت ایمان جا بیفتد و شکل خودش رو و عیار و سنجش واقعی خودش رو نشان بدهد و مود ببینید اینها چگونه در حالات تمحیص بودن و در حالات ابتلاع چگونه تو این صحنه قرار گرفتند؟ ع کوون و اف قلل آیا نگاه نمی کنید و بررسی نکردید که در برها این زمان چگونه مؤمنان در میان همه خلائق از جهت اعبا سنگین از همه بودند؟ آ با جمع ا عین به همزه به معنای بار سنگین باور سنگینی که بر دوش است آیا نمی نگرید در طول تاریخ گاه مؤمنان چه بارهای سنگینی بر دوش داشتند چگونه دوششون سنگی تر از دیگران بود چرا به دلیل ایمانشون عزیزان من کسی که تعهدی ندارد به بفرمایید و خالد چه مسئولیتی داره کسی که بنا نداره قوانین راهنمایی نمایی و رو عمل کنه کجا به فکر اینه که آقا این دوبلاست پار کرده یا نه کجا به فکر اینه که این چراغ چه بود کجا به فکر اینه است که این سبتش مجاز بود یا نبود کسی که نمیخواد اینه ها رو بنا دارد را نکند مسئولیتی بر خودش نمیبینه هر کاری خواست انجام میده و هر شیوی خواست مند اما اگر کسی مقید و پای بنده به رعایت قانون شد توجه کامل دارد به تمام این ضوابط که رفتا رو بر اساس هنجارهای قانونی باشند. در مورد خداوندم همی دارد. کسی که به خدا تأهد نداره که بار دوشش نیست. اما کسی که تأهد دارد به خداوند به معنای واقعی هم تأهد دارد. همون عبارت آمیانه خودمون میشه که پس طبعا هر که بامش بیش برفش میشد. هر مقداری انسان متعهد تر میشه به خدا دوشش سنجین تر میشه مسئولیت فوزونتر البته جایگاه مقام رتبه ثر آید اما در این حال بار سنگین تر میشه. فرمود کیف کانو فی حال تمهیز علامی کونه افقال الخلا و نگاه نمی کنید که از جهت ابتلاگاه مؤمنین در چه شرائط سخت و دوشواری و عط ابل عباد بلا ان. چه تقب و چه سختی ها ای رو در ابتلاع و بلا بر وجود مؤمنین بوده است و از یقه اهل دنیا حالن و تو مردم دنیا چه حالهای زیر و چه تنگناها و فشارهایی رو مؤمنین در طول تاریخ متحمل شدند حالا امام دیگه اوج میگیرد سخنش رو برز کردم یه مدل اجتماعی رو مطرح می کند اتخذت همول فرائنت و عبیدم، عنوان نمونه نگاه کنید در طول تاریخ بوده از شرایطی برای مؤمنین و بندگان خدا که فرائنه ایشان رو به عنوان عبید و زرخنید خود و زیر فرمان خودشون چگونه قرار دادند کلمه فرائن جمع فرعون است ابتداعا به یه دوره از سلاتین مصر فرعون میگفتن جمعشون فرائنه الان همینجا خدمت دوستان میخونیم اکاسره جمع کسره، قیاسره جمع قیصر، به سلاطین ایران اکاسره به سلاتین روم باستان قیاسره به سلاتین یمن توابعه به پادشاهان دورهی از مصر فرائنه اما بعد بود زمان خود کلمه فرعون به هر تاقی یادی گردن کشه بر خدا و خلق از اون فعل ساختن حتی اگر کسی این کار رو بشمیکردن میگفتن تفرعنه تفرعنه فعلیه که از اون ساخته میشه همین رو فرمود اتخذت همول فرائنت ها در طول تاریخ فرائنگ ها این مؤمنین رو به عنوان عبید خودشون قرار و فساموهو سو سامو هم سبمه و سامه به معنای الزمه الزمه الزمه وابسته کردن الزمو هم سوالعظام همون که در یه سومون هم سوالعظام امیر المومنین عبارت رو از گوهان گرفتن به شدت اقوبت و شکنجه خودشان رو این فرعون ها بر گرده مؤمنین وارد کردن که اینها دست از ایمانشون بردارن عرب نشینی از معتقداتشون بکنن از پایبندی هاشون بکنن اینها مثل دیگران باشند مطیع باشند گوش به فرمان باشند زرخلید باشن تعهدی به خدا نداشته باشند مطیع دستورات فرعنه باشند و جرؤهم جرأن مرار و جرؤهم جرأن مرار یا مرار جر یا جر رو ببینید گاهیه داروی تلخی هست به این و ها میخوایید بدید یک کاری میکنیم که یک باره یک باره بخوریم دارو روی این شربت رو بناسی ماده تلخی بخوریم بلاختی روغن کرچه که بوده زمانی برای چیزهای استفاده سلفات دوسودی بود برای چیزهایی استفاده میکنند اینو یکبار یک باره مثلا بتونه بخوره که تلخیش رو نفهمه اما اگر اون را قطره قطره بدن که ایزا و ازیت بیشتری داشته باشه ناموند هجره از ماده جرعه میاد یعنی جرعه جرعه امیدند. داخل قرانتز از میکنم در مد وجود اون بارا که ولی نعمت بزرگ بار ما علی ابن موسط رضا و ها در مورد اثر سم و سم دادن حضرت داره به تجرع بود اثر سم در وجود شد. پس تجرع یعنی یه چیزی رو به تدریج پیوسته همین طور کس و جر او هم جرا المرار و این فرائنه به مؤمنین آن با آن جرعه جرعه دادن جرعه‌های مرار تلخ شیره یه درختی بوده از مثل صبر که در فارسی صبر فارسی رو عرض می کنم. یه سمقی بوده و می درخ امکانو خوردنش نبوده مرار ازمون مر و تلخی اونچنانی جرعو هم جرر المرار فلم تبره لحالو بهم هم فیزد للحلکه و قهر القلبه فلم تبره اصن امیدی نبود هیچ روشن نمیشد، دست بر نمی داشت از ایشان حال حال مؤمنین این چه نمی و غوبت به شکنده و فرعونهای زادمان و تابیان فرعونانه جرعه جرعه تلخی ها در کامشون اینها میشتا دند لم تبره بهم فی ذل در این ذلتی که بر اینها بود و قهر الغلبه در این غلبه قاهرانه‌ای که فرعون بر این مؤمنین داشتند لایج دون حیلتن فمتناهن حیله به معنای چاره جویی. هیچ هیله و چارهی نداشتند این ها بتونن مقابل این فراینه رو بگیرند از این فشارها و شکنجه ها بکاهند بلا سبیلن الا دفاع هیچ راهی هم برای دفاع از خودشون نداشتند خب حالا دقت کنی بس امیر المومنی میفهمد بینگری در طول تاریخ گاه میبینید مؤمنین رو در شدیدترین شرایط های ظلم بر سر اینها قرار گرفته فرائنه بر اینها نشسته به شدت سختی‌ها و شکنجه رو بر اینها تحمیل کرده هیچ راهی هم برای خلاصشون نبوده است اما حتی تا آنکه عذرا ربنا سبحانه او تا آنکه خداوند سبحانه و تعالی دید دید دو چیز رو در این مؤمنین دگرگون کرد شرایط اینها را یک حتی را الله سبحانه جد صبر منهم علالعظا فی محبته تا آنکه که خداوندی جدیت استقامت پا این جماعت رو در صبوری در قبال ایزاها و آزارها و دست نشستن از باورها و ایمان اقاعد فی محبته یعنی این فی رو میتونیم لام علت بگیریم مثلا یعنی به معنای لام علت باشد در محبت یعنی به خاطر محبت یک خداوند صبر مؤمنین رو در پای ایمانشون دید که این صبر از محبت خداوند برخواسته بود ذات باری این مؤمنین زیر باره چکمه و فشار رو دید که چگونه صبورانه دست از ایمانشون نمیشویند مقاومت در قبال فرائنه دارند میکنند دست نمیشویند از ایمانشون و علت این فی محبت اشقیست که از خدا در وجودشون سرزده و فرو رفته یه وقتایی همینجا خدمت دوستان به برکات کلمات نورانی و اشارات زیبان زمانت مقدسه محمد و آن محمد عرض شده است محضران بارکتون که این استقامتی که بزرگترین راز توفیق انسان هاست دو تمام زمینه ها اگر کسب و کار است به اگر سیاست است، اگر دیانت است، اگر علم، اگر تقوی، اگر معنویت عزیزان کلید اصلی به بار نشستن استقامت و شکیبان است. تو فراز و نشید اقتصادی آنی که انسان را به اوج می رساند استقامت اقتصادی است. تو مسائل علمی اونهایی به قله علم میرسند که کم نیاوردن به تعبیرام یا نه نشینی کردن در قبال ها غیر اونزا با اونها نساخت راهشون رو بلد شدن جور دیگری عمل کردند شعارشون این بود که زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز حدیثی بیخبران است تو با زمانه بساز اهل ساختن نبودند اینها اهل ستیز بودند این بودن که بسی کند دو کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خورا رهی برگشد در قبال بوتونها و نوانه بوتونی که قرار گرفتن راه خودشون رو باز کردن استقامت کردند. رسیدن به قلعه های بلند علم معرفت اقتصاد کمال شکوه مندی میدونیم اون جمله زیبای همین لا یعدم و از زفر به این طالب هز زمان من ععددی بهتون قول میدم. انسانی که استقامت و شانکیبایی دارد هیچگاه از پیروزی محروم نمیشه. هر چند زمان میبرد اما به موفقیت میرسه. بعد شما میگید، صبر و ظفر هررو دو دوستانه قدیماً بر اثر صبر نوبت زفر حافظ دقیقا ترجمان سخن امیرالمومنین ممنیننگ من کند. از کردم به تو فکر نکته زریفیست که صبر از چی مایه میگیره یعنی چرا انسان استقامت پیدا میکنه؟ چرا انسان اینقدر میسته پای کار؟ دو چیز میخواد دو تا نکته یه که جوهر اصلی صبر و تشکیل میده صبر و استقامت از این دو چیز میاد یک محبت عشق دوم آگاهی معرفت علم این دوتا سرمنشق و منبع تولید استقامت وقتی که انسان به معنای واقعی تعمه یه چیز رو از جهت محبت میچشه و عاشق میشه عزیزان میستن می همه چیز رو پاش تحمل میکنند وقتی اون آگاهی نازم برای انسان که پدیده و موضوعی میاد قیمتش رو هم میداد پاش میستند و تعمل به شکیبایی میکنند مثال میزنم من نوعا این رو برای که خوب ملموس ذهنمون باشه و دعا کنیم که خداقند همه گزشتگانمان، آلمان، فبیهان، شهیدان، حقداران، امام شهیدان گزشتگان جمع حاضر والدینی که رفتند صاحبان حقوق رو در دریای انبار رحمت خیش بگرداند نمونه عالیش همین پدر مادر هامون از بالاخره اینه که گوه این پدر مادر ها وقتی نگاه میکدن بین این بچه کمی دلگیر میشدن میگفتن بابا برو که بابا بشی. برو که بابا بشی. برو که مادر بشی. بعد میفهمی قصه چیست. چطور چی تحمل میکنن این پدر و مادر را فرزندانشون؟ همه بد ادائی ها رو تحمل میکن. میان مینشینن دامن دامن پیش انسان اش میریزن اما بازم پایین به هاشون استاده پای همه بدرفتاری هایست یک دهم این رو از دیگری تحمل نمی کن از فرزند برادرشون تحمل نمی کنن چه برستن فرزند همسایه اما چرا از فرزندان خودشون بدعدایی ها، بدرفتاری ها جفاها، بیعدبی ها، بیحرمتی ها گستاقی ها رو تحمل میکنن چون آشغ چون خدا پدر و مادر رو عاشق آفریده نسبت به فرزند میگه جگر همه پاره تنمه پاره تنمه خوب تحمل میکنه اجرو عجیب شرمنده میکنه انسان واقعا محبت از عزیزون نسبت به خود انسان واقع خجالت میکشه وقتی میبینه این وفای اونها و این جفای ما رو گوشش منتظر زنگ این تلفن این مادره بعد از 10 روز 15 روز 20 روز یادش میاد که زنگی به مادره بزنه زنگ میزنه الو مادر حالت خوب است احساس میکنه تمام دنیا رو مادر بهش دادن 20 روز هم در انتظار این زنگ بوده این آقازانه هم منتظر تا خب کاری ندارین؟ اصلا نمیشه اینا رو با هم باید سکت که چه حالی این طرف خطه؟ چهاری اون طرف خط یه دنیا عشق این طرفه یه دنیا شعوره محبت. این از عشق برمی‌خیزد این صبوری که والدین دارن و از شناخت از اون روزی که در رحم مادر بود نه ماه, ماه با این فرزند روز و شب زندگی کردین مادر تا اون زمانی که آمد زیر پستان تا اون زمانی که آمد بالاخره خورد زمین بلند شد کاملا میدونه این بچه شو بلد این بچه شو نتیجهش میشه صبر هر کار بکنه نمیشه جز این. میشه سبر اینو مثال از کندم خدمت دوستم خداوند دید جدیت صبورانه این مؤمنین رو در قبال ایزا و آزاری که دست از حدود به حقوق ایمانشون بر نداشتن به خاطر عشق و محبتی که در سینه های اونها جوشیده از و محبت واقعی مقاله رو من دیروز می میکردم از مقالاتی که میخواد تجدید چاپ بشه در مورد محبت اون حقیقت خوب که جای دیگری نیست همین محبت مادر که میگیم یه سایهی نمیشه گفت یه رشهنی از رشهات محبت خدا این محبت است. محبت حقیقی اونجاست از حضرت یا ودود می آید اینها رسیدن به محبت خدا پای همه چیزی استادند ولن اهتم ولم احتمال للمكروه من خوفه خداوند دید اینا چگونه احتمال میکنن احتمال نه قانون احتمالات ریاضی احتمال از ماده حمل میاد یعنی متحمل شدن و بدوش کشیدن خداوند دید اینها چگونه متحمل میشن مکروه را و امور ناپسند و کره و فشارها را من خوفه خیلی عجیبه از خوف خداوند از یه طرف فرمود فی محبته فهمد من منخوفه خداوند دید اینها دو چیز دارند که نگرشون داشته استعامت و صبوری که از عشق و محبت برمیخیزد و تحملی که از خوف خداوند برمیخیزد پس مشخص میشه تمام چیزی که انسان رو دو تو دشواری ها و ابتلاعات اهل ایمان رو ولو زیر فشارها و, و چنگ چکمه های در طول تاریخ نگه داشتن دو چیزه حبستو خوف هست محبت و خوف اینی که این عشق اهلاهی که در وجود زبانه می کشد و شور می و دوم اون خوف و چقدر زیباست و خلق همی اگر هر کدام از این ها اون دیگری نباشه نمیشه اگر یه نگاه صوفیانهی باشه که بعضی از متصفح داره که همه چی اش همه چی اش نمیشه انسان اگر به اونجا برسد که همه چیز رو به عشق ببیند در پیشگاه خداوند متجری میشه متجاسر میشه بعد ادعای عنال حق میکنه ممکن خودش هم جای حق برشیند چنین هم میشه اما هنگامی که این عشق با خوفه یعنی با شناختن حدود خدا و حقوق خودش و اندازه خودش اینجا میشه زیبا اینجا نتیجه به بار مینشید انگامی که خداوند چنین دید حال این مؤمنین رو جعل لهم من مزائیق البلاء فرجا عربها میگن اند تناهی تکون الفرج ما تو فارسی میگیم فواره چون بلند شوند سر شود به اینجا که رسید خدا قرار داد به برکت این محبت و خوفشون به برکت این صبوری و شکیبایی و تحملشون قرار داد برای ایشان از این های فشار فرج را خدا درپا را بر روی ایشان گوشون. فأبدل لهم العز مكان زل. و بدیشان جایگزین کرد به جای اون زلت زلی که بر اینها بود عزت را شکوه مندی را مندی را و امن مکان الخوف عزت از دست رفته رو به ایشان برگرداند امنیت از کف رفته رو خدا به اینها برگرداند خوف رفت امان آمد فسار و ملوکن. اصل این ها شدن حکام ملوک حکامن و اعمتن جلوداران و پیشوایان مردم و جامعه و بشریت بین به کوه میگن علم به گلسته میگن علم شدن نشانه هایی در جامعه در اخشان روشن قد بلغت کرامت خدا شامل حالشون شد انایات اعلامی شد فرائنه به گورستان سپارده شدند اینها اومدند حکام شدند جاینشین شدند فشارها مزیقهها برداشته شد چنین و چنان ما لم تذهب و الیه بهم به جایی رسید که اصلا تصور چنین آرزوهایی رو خودشون نمیکردند که امورشون به اینجا برسند تدبرو تدبر کنید در برهایی از زمان مؤمنین رو ببینید که چگونه در فشارها و مذیقه های اونچنینی و شدت بلا تحمل حدود خودشون کردند. ایزاها رو متحمل شدن پایبند سود ایمانشون به خاطر عشق و محبت خداوند و خوف الهی تا اونجا که ذات باری تعالی دستگیری از اینها کرد فراغله به چناری به زیر کشیده شدند حالا این فرائنه که میگه خدا فقط فرعون نیست دیگه عرض کردم این مدل اجتماعی که ذات بابیتانو ما متفهم کنند رسیدند اینها به موقعیت به نعمت به خصوصیت به حکومت و به اون اوج آنچه که تصورش نمی‌کردند رسیده هستند فنزو رو حالا چرا اون ویژگی ها رو دقیق تر باز کنم براتون امیرالمومنین میفرماد فنزو رو کیف کانو میدونید چی شد که اینا اینطور شدن اون محبت صبوری اوج که رسید چهار پنش تو ویژگی تو اینها پیش اومد که نتیجه باید این باشد هر کجا که باشد چنین می شود حیث و کانو خنز کی؟ کیف و کانو حیث و تل املا و مجتمع جوری شد که اینها املا جمع ملع ملع یعنی جماعت پر جماعت جدی کانت املا و مجتمع این اتفاق وقتی افتاد که اینا با هم اجتماع کردن دست هم گرفتن و هم مجتمع شدن و لا احوام من دارم میگم انو رد میشم اینها رو عزیزان بعد جدیدی نگاهی بکنید و لا احوام زمانی شد این کامیابی و موفقیت اینها احوا یعنی میل ها خواسته ها که میل ها و خواسته ها اینها با هم ائتلاف کرد پیوسته شد یکی شد تفرقه خواسته و میل در بین اینها نبود و قلوب مؤتادله و قلب هاشون معتدل شد یعنی از هر افراط و تفریتی به در اومدن از هر اصراف و اختاری به در اومدن بلکه اعتدال فکری هر تندروی و کندروی رو به کناری گذاردند ولی ایدی مترادفه و دستهاشون مترادف شد ترادف یعنی تعاون یعنی دستهاشون شد زیر بازوی هم و سیوف و متناصره و شمشیرهاشون شد یاری دهنده و نصرت دهنده یکدیگر دیگر و البسائر و و چشم ها و بصیرتشون نافذ چیزی نپوشون از کینه و بغز و حقد و غیره غیره چشم اینها را و از آئم و واحده از آئم جمع عظیمه یعنی تصمیم جدی و تصمیم یکی شد عالم لم يكونوا اربابا في اقطار الارضين اینها شدن بزرگان در کل زمین در طول تاریخ و מלوکا على رقاب العالمین قدرتمند و حاکم بر همه جهانیان بر عمده جهانیان مثلا امیرالمومنین فرمود علتی که خداوند لطف کرد اینها با صبر و محبت و با خوف الهی خودشون رو باز یافتند فرعون به کناری رفتند اینها چه کردند که این موقعیت و این قدرت رو پیدا کردن؟ یک فرمود کانتل املا و با هم اجتماع کردند. گفت مورچگان را چو بد اتفاق شیره جیان را بدرانند پوس قطره قطره سیلی گردد و اندک اندک خیلی به تعبیر سعدی دانه دانه از قله در انبار، یه انبار چند هزار از دانه ها تشکیل شده است اینها با هم اجتماع کردند دلهاشون رو با هم یکی کردند افراط و تفرید رو به کنار گذاردن یعنی اجتماع ائتلاف اعتدال و عیدی مترادفه دستهاشون به یاری هم اومد تعاون و سیوفا متناسره از نیرو و قدرت نظامیشون برای یاری دادن به هم استفاده کردن تعاون تناسر و البسائر و نافذه چشماشون شد نافذ و تنافذ و از آهم و تصمیم واحد و اراده های واحد و تصمیم های واحد نتیجان که شدند قدرت و پیروز در اختاب عالم و در تمام نقاط زمین امت اسلام همین بودن عزیزان زمانی که شما نام مسلمانان را در شرق و غرب عالم شنیدید همین بودن یعنی با این ویژگی ها با همین ویژگی هایی که امیرالمومنین داره میفرماهد رسیدن به اونجا که سیت شهرتشون تمام شرق و عالم رو زمانی که اروپا در خواب خفته قرون وسطی است بگیرند اما متاسفم از اینکه ادامه سخن امیر المومنین رو هم باید بخونیم دیه خدمت دوستان فنز رو حالا اون طرف رو نگاه کنید الاماسارو علیه فی اموره هم اما متاسفانه گاه این حالت دوام نداشت ببین چی شد فی آخر امورهم هم در پایان کارشون حین وقعت الفرقه. وقتی که چی شد؟ اون اجتماع و اتحاد شد افتراق و بین همین مؤمنین همین ها که اومدن به این موقعیت ها رسیدن تفرقه ایجاد شد و تشتتتل الفه. اون اعتلاف ها به ها به شعبه شعبه فرقه فرقه هز به هز گروه گروه تبدیل شد وقت اختلفتل کلمه و نفعه اینکه که حضرت امام رو همه اون وحدت کلمه رو این ترکیب از خود ایشان نبود که به کار می بردن بسیار زیبا از امیر المؤمنینه وختلفت ال کلمه دیگه اینا اختلاف کلمه پیدا کردن به جای وحدت کلمه دیگه حرف هم رو نفهمیدن، ندیدن، نشنیدن یگانگیشون رو از دست دادن دلهاشون از هم جدا شد تدابر پیدا کرد تشعب و مختلفین شعب, شعب شعب شدن هر کسی سازه رو و حزب خودش رو زد تشعب و مختلفین و تفرق و متحاربین حتی ای شدن که از هم دوتا شدن و مقابل هم هم ایستادند پناه به خدا میبریم قد خلا الله و انهم لباس کرامت خدا دوباره لباس کرامت رو از تن ها به درامه قد خلا الله لباس کرامت و سلبهم قذارت نعمته و خداوند از ایشان گرفت شیرینی و خوشی نعمت هایی که به آنان داده بود عجیبه من بگم این جمله رو ببندم مطلب رو این آیه رو زیاد از زبان از من شنیدید و گمان میکنم از تکان اگه بخون چند تا آیه تو قرآن بگید که از تکان دهنده ترین آیات قران یکی این آیه است که این قانون خداست بان النوه لم یکو مغیرا نعمت انامه علی قوم حتى یغیروا ما بین فصل خدا بنا ندارد هیچ نعمتی رو از کسی بگیرد مگر اینکه انسان ها خودشون نعمت خدا رو پس بزنند با تغییر در رفتار و حالات و افکارشو حید کندنده لم یکم و غیرن نعمتن حتی های ما بانفوزه امیر خدا فرمود اینها ببین پایان کارشون چی شد تفرق در میان اینها آمد تفرقه و تشتوت. الفت به کناری رفت اختلاف کلمه پیش آمد دل از هم فاصله گرفت شعب شعبه و گروه گروه مقابل همی ایستادند. منافع حزبیشون شد محیار کار اینها قد خلق الله انهم لباس کرامته خدا از تن اینها لباس کرامتش رو خارج کرد و سلب هم قضارت نعمت شیرینی یه نعمت رو از اینها گرفت و بلیه قصص هست و اخبارهم فی ابرا. للمعتبرین منكم و داستان به حکایتین ها و سیرین ها به عنوان یک عبرتی برای شما باقی ما که فعتب رویا وللعبسان ببینید که این مدل اجتماعی همیشه قابل پیاده شدن و انتباغ است فعتب روبه ها ولل اسماعیل حالا این روی بخش های دیگه ایشو امیر المؤمنین اینیتر و هلمیتر بازگو می فهم. خیلی تکان تکاندهنده این قسمت های سخنه ازد یعنی موقع این یا تحلیلی است که اصلا تمام تاریخ بشر رو و تاریخ اهل ایمان رو امیرالمومنین دست دستبندی می کند و قابل بررسی های خیلی سنگین‌تر و پیشیده است که خداون توفیق فهم استفاده و اعتبار از سخنان امیر ملک ولایت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمایند متشکرم و سلام علیکم